أعوذكم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيورين طهرنا المعسومين والمعزباء وفعل أعدادهم الرحيمين اللهم اعفرنا جميعا الشعرين والحمد الرحمن الرحيمين يا رحمة الرحيمين پس در باره یه بود که در این مواقضه شده برای حجید یکی ای از این روایات حدیث شماره چهره در این کتاب که از کتاب سلیمه مقیس هلالی نهر کرده یکی بایده که متنبه خیلی وارد بحثش نیمشون می آخر این روایات دواتیز که حضرت صد و شهده صحبتی کندم برده در آخر فهم بودن بکن به و انشه بکن این هر داشت استعمالش در هم سلاسی مجرد نشده ی انشه که قسم بده هم سلاسی مزید باب افعال انشه بکن به لا از این لاحقه دست کن بگیم از حضایی دردن که این حدیث این صحبت رو بکنیم به افراقی که موضوع موسیق شما از حضاییشون شاید مثلا بیاره مدومان حجد خبر سره و واضحه با که ترسیل مونده ممکنه که مراد مجرده به سارتی در نقل نباشه مستمیم باشید افراد صالح یا افراد خوبی هست نمیرد افراد رو دو دیگه نراختنم از با انصال احوال ظلم به حال استفاده حجد خبر سره این خیلی مشکل واضح نیست حدیث شماره دهدی و که ایشون از کتاب دو مستدرد نهار کردن از مقوم ابن طاوز در کشف یقین همکه این سند ابحام هایی داره یکی دو سند داره و توش زهد هم داره هفت داره که دو داره. در داره دیگه حالا وارگون نحس نشین این یکی از اسانی که در مسادر ما آمده راجب خبر پغیر ایشون نمر کرده بعد می گره در حضرت محمد عظمی صاحب این زیارت معروفه، دعای معروف تصدقا بعد افرادی که اینجا هستن در سند زیارت آفروه هم واقع شدن محمد عظم خادمی توضیح که بشه بشه. و طولانی میشه از این محض در خطوی قدیل نه جمله صحبت که شده که محل شادینه برد دلخت مؤمن خود تبلیغه حجتاً علاقون لا حاضر و خایب پیغمبر را اونه کلار من مجت هم برای حاضر هم برای خایب بر نه نقطه اینه که برای خایب به نحو روایت نه اینکه که مراد این باشه پیغمبر شرطه این که طابت نشه خودشون شواهد ما حاکیست که امیر در تمام خود پیغمبر کتابت میکردن این قصه حدیر رعنس ما محر... ماه زیه چه بوده در سال ده. طبعه شباده که خود اهل سنت دارن از ماه رمضان سال 8 یعنی دو سال و تقریبا سه ماه چهار ماه قبل خادثه حدیر عبدالله ابن عمره شروع کرده بوده حدیث پیهنبر رو نوشتن و که به رسول می میبینیستم لکن برزی ها مخالفت رو هم پس مراده من این نبود که پیغمبرو دیودم از کردم که پیغمبر بیرن صحبت هایی هم تقدرن به سماییه و شباییه نه می ازید از ازید اصل سنن درست معروفی دارن که آیا کتابت سنن پیغمبر درست بوده اصل کتابت چون ازیدشون نمی کنن که پیغمبر اجازه کتابت ن حالتی این قصر رو به عمر نسبت دادن لیکن من توضیحاتش از که تکرار جامده داده اون چه که از عمر بوده قیه از کتابته که این معنی بوده که شاید سیار میتونه کتابه و هر حال از پیراندر نرد میکردن از طریق عبوسایی و قردری من کبه برمیقه از قرآنشه یه این خلیه هم خوب پاکشون غیر از اون حدیث ثابت نیست و خود رسول هم بحث بس دارند اینطور نیست که بعد راه برای ثواب جو جستیاریم حدیث عبدالله بن عمرو اس تهرانم اجازه کثار دادم حدیث هرسیری خوری را که به عمر از انساء چرا عمر یک کاری خبیث انجام داد کتاب نوشته یعنی چیزی در حدیث از سید خوری تهران از نوشته پاک شده و عرض کردم بین صحابه مثلا و خلاف بوده و این مسئله شده این مسئله که زیر بنامش به روایلاتشون برمیگرده تا همین زمان ما هم عرض کردم چند بار اختلاف بود کتاب یه از واعنسان و محمود عبویه یک کنه داره که نباید میگه بشن تعیید میکن نباید بشن کتاب مصطلح و حدیث صوفی صالح دراستات الحدیث النبری معادل محمد حسنا حضاری مثلا این کتاب دو هم داره که صحابه می نوشن در زمان ما یکی این بر اصلا داره دار و و اصلا مساعد کن برمیگرد به صحابه بینیزوی هم قابل خل نیست مثلا در این کتاب دوم لیستی لیستی اصلاحابه که نوشن حدیث نوشتن ایشون کرده کرد از در در در در در در در میخواد در در آقای سوی سالو دیگر علاقای حاله اصل نوشتن پیش ما هم که امیر مونوی نوشتن این ثابت لیکن در این جریان ساله حجات و و حضور در قدیل که نزید جوه هست دیگه اونجای نبودی که در قرقه باشه باید نیستن و رضا قرقون ما امر به لحظ و معامل تو به تبزیقه حجتاً عراقون حاضر نوازه. علاقه میزوی که متن حدیث قدیر و خوش طولان طولانی و مختصر این بودی محدیسی در کتاب کشم یکین سیدو تاوز نمی کنه و الان من و من لمیش هد. حاضر و بله حاضر و رو کن قاعد رو کن این شاهدینه حاضر رو رو قاعد رو یعنی این حدیث حدیث پیمنبر و شرمانز از که در من در اقرال یا اگه آقودشون باشه این صاحب این باشی این رو با قبول بکنیم یعنی صاحب نبی رو جلخم هست خیلی مشکل هم بسیار جلخمی الان قال کل رو حلال دلتو کن و حرام نحیی تو کن هم فه این ای و جهن داری ولا رو بدلو علا فرکرو و حفظو و تواسو ولا تو بدلو ولا تو غیلو. رقیم و و, و عقود زکار در مورد معروف و نموحن کرد فعرضمون من لم یکدر نقامی مقام رو قطعه بخونی و لم یسمه مقالی حاضر فإنهو به الله و هم بخون علاوه از این از این بباره را روحات قبلی این طوراتی دیروس موجود نهد روحات موسیقی ها پیغمبر حکم بخواد بخواد مجموعه سننی که من دارم و همین کلمات منه اینطوری چونیز که پیغمبر حکم مجموعه سنن رو مدربن فرم ببین بگیم به این کتاب مراجعه کنیم کتاب مدربن نبوده ما در بحث سنن از مرز کردیم یه مردار از سنن پیغمبر بسیارت نوشداری بوده نوشداری خود ترس و خود حذر بوده و مقدار بسیار زیادش کلامه که تصدر سحاور على اصطلاح درجا در شده و از در بر ما تاکید شده که تمام اموری که مربوط به سراجیان باشه توسط امیرالمومنین صلوات را و راصاله علیم ضبط شده همون سید بعدی یا کتاب و علیه یا کتاب به اصطلاح جامعه رساله جامعه اینطور این چیزی رو قرار نهاد کرده است عبدالله احمد راست اسم کتابش از صحیفت و صادقه است چیده که این جمع تنه شاعتن جمع تنه نیستش صادقه رو بروزن شنیدن وقت امیر و مومنین رسالهی که داشتن الجامعه این الجامعه در مقابل از صادقه اون که امه علیه السلام سلام میوخنه که کتابی نوشتن. مومنین کتاب میوشتن جامعه جمعه سنن رسول الله هست که احتیاج به کسی دیگه نیست این خطبه قدیر رو این مرمون احتجار هم داره، احتجار رسول هم طولانی از این قدید داری این مردار اولش سندش هم تقریبا با این سند 3 مقدار مردار احساسیش یکی هم، فهم چون یه طولانی میشه و صحاته بیشتر چنده رجاله میکنه صحبت فعلا در اون جد و ارمال این هم حدیث شماره چهر و حدیث شماره چین به لحاظ سندی فعلا گیر داره علی بن ابراهیم در بسول کافی هن عبی هن محمد فعلا نشناخت محمد کیه این محمدی که ابراهیم نقاشم ازش چون محمد ابن الان اطمینان پیدا فیدا محمد بن خلان الواقفی. تو من خوب نشترستم قال کانلی ابن عمن یقال لهو عبدالله کانل زاده در و کانل احفظ احفظ زمانه قصه رو نحن بکنم آن مراجعه که بودیم مطلب نمیگیرم راجعه به برخوردی به موسفر جهتا رویشون که برو دوزایی ابن عاملی زبرو براتر بر بر با اونها از شب کندم خوب هم می‌فرامون به من معرفه قاله ای و تفقه وقت لوقه لحقی من نشاهدیش بعد می‌عرض که از قدمای مدینه می‌ده خدمت به مدینه می‌ده ویده من در می‌گرد بعد می‌دهد خدمت نسانه جهز و سره‌ها اوله‌ی از قطعه‌ها کنه از و از از از از باطله وقت خودشون حدیث از بسار داره این برای که کشایه کشمالی که حدیب. کتابت حدیث و شمیده حدیث رو تقییم کرده درسته این منطبت حدیث ناده زیره درکه اصل مطلب اجمالا درسته باز در کتاب اصول کافی الحسین محمد هم معلم محمد حسین محمد استاد ایشان از هست اشاره قمار هست در جلوه ایشان ها رو هم نیستون هست از یکی از آن بسری معلم محمد, محمد بسری زیاد رو نعمه کن بعد اون معلوم محمد یا تدییف شده در حالت توصیح هم شده بله مرموم استاد این مدت ایف شد توصیح میکنه کامل زیارات برگشتن از توصیح معلوم محمد یکی از موادی که تقریبا منحسرن با توصیح کامل زیاراتی ایشانه بعضی مختصیح از خطابای استاد معلوم شد بخاطر این معلوم محمد عمل حسن نهلی نبغش البته بچه ایشون بسریه, بسریه. یعنی محلا بسریه اون حسین محمد عبد قومه این آقا عهد بسره این که دیگه شون همه گوفه است حالا بوده من هنوز درست داری کنم انا احمد بن عائض ایشون همه گوفه است بقیه احزیز گوفی هست بقیه احزیز گوفه است انا خدیجه سالین و مفرم که گوفیه معروفه بچه برون خدیجه از جماعی مشکل تقریبا بی این منجله داده چون ممنون نجاشی گفته سر از این سره برای شغل زنگیم مسیبه در سرکی ها ظاهرن شوابه میدی میدیشون جزو خوشی که انحرافی بوده جزو حتی به انحرافی بوده با کم آتر با میفرد بوده برای توبه کرده برگشته و لذا به ذهن میاد هم با نجاشی باشه که توصیه می کنه حتی خب در اول کنه حرف بوده اقتصاد سخت و تفرده اونجا رو markedie ها وشاطره. هر چند در قيام مسلمانان علقمطا چه صد نفر بودند. اما راحت با شطاوی و مسلمانان که که بود. شما تلاش کوشش شده که به قابل ها این شب استقرار ما در خودش به حال ظاهرا توضیحش رو باید لولا مشکل از این سند در کافی تقرار شده یعنی یکی دو یکی از راقای کافی به کتاب وشا این شخصه یعنی حسین محمدن محلل محمد ما فرادیستانشون وقتی بزداد مثل مثل بستهیشون میده کنم در یک سفر بروفه نه کنیم رو حام بکنم زیادشون انصافن این این سند در کافی زیاد آمده حسین محمدن محلل هن بشاره یکی از واهای به بشاره حدیث 40 منرا من حدیث من فرد دنیا را میگونه و آخرت نفسی خیر و دنیا آخرت خب این در به ما این چیزی از توش در نمیاد حتی ممکن است. که سعی نکنه منکر ادعا، سعی سن این تعبیره، جماله اعادتو تو توثیق بوخ پیدا می‌بینید. اینا چیزی در متراسی نه، این چیزا نیست. حدیث شماره 44 قابل اعنی عمومی علی السلام با رسول الله صحیح به صورت مرسل در حرکت کرد. قابل اعنی عمومی، صادر رو میگن که فرض بگه قابل اعنی عمومی متجرد. رو بیان اعنی عمومی متجرد این متن ثابت نیست. چه توضیحاتی کردن که چه کسانی قابل درک چی است چی شده از صدایی میشه واضح برداشت کرد یه تکرار نمیدونم قابل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الله مریم صلوات بر رسول الله و طلب بارک اله علی بعدی و علیه بعد ای یا حدیثی و سنتی حالا ایشون تا اینجا چه رو برده توی بحث داره بیان علمون عن ناس بعد یعبون و همه یعلمون هنه هستیم دردی این محدود به حدیث آبا و محمد مثلا تو این زبان ما در, این در بدود دیویس سال اخیر به خاطر بحث بلایت فقیر این حدیث مطلب شد اولی کسی یعنی کسی که اونجایی دید من بودم تو بلایت فقیر عواردو و حیروش استراته به مرمون در کتاب کتاب در حوائد و درحیام در کتاب عوائد این حدیث عواردو خب بعد هم در کتاب همین هم به مناسبت غلط مفصل هم کردن که این اولا خب دلحاد در فقیر آمده که در کتب عربعی ماست در کتاب ماه اخبار آورده برده شیخ سرور حضرتان عدی پدرم حضرتان عدی انا از پدرش از حسین ابن یزید نوحلی این شاید آن علی ابن داوود اليعوبی دوستش نشدم. آن عیسی ابن عبدالله ابن محمد ابن عمر ابن علی نه میفلم. عیسی ابن عبدالله آن عبیه. دکتر آگو چون در توجه داشت. این عبیه زمین به عیسی بر میگرده. آن عبیه که نمیشه عیسی. عبدالله. آن جدی. زمینه انجام دیی حالا خلاف قرآن داد عبید بر میل نبود خودش حالا خلاف قرآن است میتونم خلاف قرآن است لکن خوبیه این جمله رو فرپیم و این شر حالا خلاف قرآن این سب عبدالله آن عبیده این این انجام دیی اسرق قرآن رو خودش لکن زمینه انجام رو دعویت برگردانی نمیگه از جای جایی که مشروط ساله انجردی بگوید این با با رسول الله که این چند شد تا اینجا دو تا شد شد که یکیش برگشت به سب نبید با در خویون اخبار اخوارزه مرحوم به اسناد آتیفی فی حال با این اسما در با دارتی می آفر می انشیبانی و انسر را زنید هست تا سرم می آراد این دوزه که ایشم و انسر را یکی دیگر برادر ابن اخی ان آبایی ان علیه طالب انرسول رضا مثل از از اللهم در کتاب صحیفت و به ازنا دیگه آقایی رسول الله نصلاست توی اولادی هم همین رو و رسول الله آفته رو که رو حالا من چون اولادی داری دا نگاه دارم چون اولادی دا دا تیکه است نوشته کرد رسمت از کجا رو نگاه که این قسمت از کجا باز دو منطبه یعنی شما چه به داره این بله همونه حد ما حسین ابن احمد ابن ادریس از کلم که احمد استاد کلینی که داری هم باشه ابو علی, علی حسین بخشه بسیار بزرگوار حسین داره نام حسین ایشون نمیشنسه حسین را در احمد رو نمیشنسه این حسین واسده است برای خاصال پدرش برای خود پدر استاد کلینی یعنی شیخ کلینی و پسر شیخ قرم و نمیشوند از فرق که مدرای دستوره و پسر آزادمان که در جز بزرگان اول میمونیم این رو میشکنیم دیگه از اشغال کننده حالا حدس میزنم علی که الان هست محمد بن زیاد محمد بن زیاد نعمتالله اش علی مصادق نورالهکم زیاد اسمشو گفته کتاب نظریه محمد حالا یا در قوم بوده, بوده یا در ری بوده یا بوده چرا ایشون اسمش هست تضریف هم شده ایشون سرانت هم تضریف شده و گفته شده که به اصطلاح استثنان شده از کتاب ناظر نفیل ان محمد نهلی این محمد نهلی اصلش ماه کوفه بوده این مرزاق مسادر کوفه به قوم رو برده مطروف از تو محمد نهلی سیرفی عبو سومنگه این دون حصف شد بیشتر نروب شده ایشون درباره شده ایشون هشه رو کذار بودیم که اوصال بکل بهش بسید علایه حاله از که هم لده ایشون کذار به اون معنی ها در کوفه بوده قرباشی بوده مساده به جادر و مجادر و همگیه و عراطیه آمد باقیه در این عنوان داشت خونه خود هشهری هم وارد بود بعد فهمید این آبا خیلی بزارش نیمید اگر شراب کلام از در ح هلازه نما ببارستش هست تو کتب اومیان خودش رو بیارو میشید تو کابی هم هزه راموشت تو کابیان بازم ان محمد نعبی سیرفی ان ایسند عبدالله علمی علمق اومدی این ایسند عبدالله هم میکردن اصلا نوشه خوندی ان عبیه که عبدالله باشه ان آباهی آباهی نیست ان جدیهی باشه که انا توضیه بدادن ان عبیه قابل رسول الله الله عمد رو اون در الذین یو بلگون حدیثی و شندی سلم یو بلگون ها امتی این معروض به حدیث الله حدیث اللهم هم خلقایی روشن شد این ها اثانید این روایت اللهم هم خلقایی خب به اصطلاح معروض تمام این اثانید که زیدم هم که داره کلن زیدم لیکن خب چون که مخصوصا در این کتابه به هم یشون خیلی استرادن که برای برای خیلی بین هم کردن کنن. اگر ما که احترام بیم از قوام خود اقوایل اصولا در اینجا سعی کردن یک مثلا دارو صد دریف شوالد زیاد برای قبولش، برای قبولی نداریم. از وقت که اولا من که اولم، که من اون کرایه نه از برای که اون دیده کردیم و. من به مداره ایشمالیت برن. و صحبت مکنم تبصیلش بخش نیم بودن بود کنیم از مدود عواطف عواطف را که از مقرد ساله نبر ها سر سر در از نباه های شروع کردن نشاره از جهدشون از صحابه نبر بکنن حالا توضیح باشه در میان شیعیان اولین رشته که ما داریم زیدی ها از زیده زمنی زیده زمنی 131 که شهادت شه. از امام سجاد از امام حسین از امیرون, امیرون این اولی از رسول الله این اولین بشه از سومی ها هم داریم یکیش نوی همین عبدالله زهر راست اینشون هم مترفای ساده 136 در امام ساده بی کنم با یک تدیب یعنی رسول الله ایشون هم داره اول اون نهده حاضر تالیشه اون مقدمه این یه مستقی راه میبسه وقت در راه اهل بیت، اونی که متعارف نده دقیقه میکنه طریق به اصطور محالس میتونیم حسینی ها یعنی از طریق امام صادق از امام سجاد از ویدیوها داریم ما نداریم مستقلن نداریم از طریق امام باقر الان نداره. اسم خود امام ماده از طریق امام صادق نسبت زیاد داریم چرا سی چهتا باشه البته اونی که خیلی مشروع سکونیه سکونی از جربل و عدیه آقای و عدیه آقای از قاقا رسولیه اونه خیلی مشروع بگرزه هم هست که از امام صادق نسبت هم زیاده از موسف جربل دو سفت خیلی زیاد نیست از موسف جربل از امام رضا از همینش خیلی زیاد امام رضا شاید 780 تا است که اصطلاحاً فی ما اینها مثلا صحیفه و رضا این صحیفه رضا این صحیفه رضا این جنسه که نمیگه تو نیست تعداد زیادی بودن که حالا ایشون مثلا قزنی بوده ایشون در وقتی بوده در خراسان بودن یه شری داره که چونی نمیخواد باشه از بعد ایشون امام جواد یکی داره دید این چطه احیمه ما و یکی از هایی که به ما بزنه این و رضا به اصانید متعدد و اصانیدی که صحیفت و رضا داره در دلتیه اول به این احل سنته خیلی میگارن خیلی احل هم میشهر به سنگی خیلی میشهر از یه مداز به گیان دارن, دارن. دارن. دارن. دارن. دارن. اونها غالبا مستند به ما بزنید به کردن با در مستند زیده یه چا نهی که زیدی چاپ شده در مثل چاپ شده با مصند زید با هم ما هم چاپ شده از هم خب یک چاپی کردن اگه سرکتن نسخه و ترزیز رو جمعاوری شاکری پنی نباشه اجمال هم خوبه شد هفتاد هشتاد تا طریقه یه مقدار زیادی از ها تو اون احتبار زید است این به طور کردی من نمای کلی برس رو بگم اون وقتی از همون همان اوائل بیگ خود در سنن راجع به اینها بحث بوده یعنی قبول قابو حالا الله ربما اشراعت ندام شرع ندام به هر حال چون بخوام وارد این بحث بشم تو میشه گاهی وقتا مناقشه ای در این که مثلا اینها در حدیث رسول الله نمیکره مثلا کتاب النعمی هست یه سری موارد دیگه دو صفحه یک تا دو صفحه از این مثلا این تعبیلی که علیه ابن مصدر کرده این به رسول الله نمیخوره بقیه این به باید ثابت باشه لذا دیگه هم از سلمانیه که واقعا مزشون خیلی خرابه مجموع در میزان روی اعتدار نقشه یعوی و یعنی یعنی حضرت رضاست و حضرت رعبی میشون نمیمونسته یعوی باید ایشون بیه باید بلافین ارحام داره در اصطلاح ارحام هست این در اصطلا در, در آن از رضا تحبیه رشید از کلمان این بیشه های بحثشون ها طورانیه وقت در میان اصحاب ما از این مجموعه ای که از کلمان به این حدد زیاد هنه رضا هنه بی هنه آقایی هیچ چیش لفتاقی نیامده یکی دو دوتاش خیلی مشغولن یکی دو تاش مشغولن که پیش ما هم بینا ها سعیدات رضا چهار شده و اون نگوشی هم بردیش رو اما خود کلیمی که هم عجیبه ایناها خب مرموم کنیده این مجموعه ای که حضور 178 نه که 178 جزد خود حضور سمینه مثلا لبون کباز من رضا لبون جزن من رضا نمو کن باید بست یه بست لطیف که اما اینها به فوق خوب العاده لطیف و خوبه علایه حاله یک مجموعه ایست محصوبه و حضور رضا برای صلی اللہ علیه این چرا رو این خطه احله که مسندن انه ابی اینه آبایی رسول الله این یه خط در زمان تحبیباً ما هم صادر برموستن یه خط دیگه احله یه خط هم دي دي هاشو که رس کرده یه خط دیگه هم ادهی از صادر بوده که اصلاح بین بینا و عمری اینا چون بزرگاه هم زیاد بوده هم کتاب مجدی که نصابه است کتاب مفیدی کتاب مجدی صاحب معاصر محمون نجاشیست خیلی مرد عدیب بر بندهایی هم ایشون هم عمری از انوی عمری ساداتی بودن که توسط عمره نهدی نهدی به عمری من یکی از عمره نهدی نهدی و در اصطلاح رژو نسب، بو، اومار ولع اثرات چون ما با اومار نه، اینی دیگه هم داریم. بسیار از از سر دو این هر با اومار، هم داشتن، و ی عنوان به اون یکی فردا درد می‌کنه، منو اومار ولع اثرات می‌گویند. به در درد سر این دو توان بیه. فردا از خط از نسل این عمر بن حلیه عمر از رفت شخص استلام ای سبل عبدالله ایشون از عبیب یعنی ای سبل عبدالله ابن محمد نامر محمد در ایشون از پدرشونی سن توی جون انا هم یعنی عبدالله انجدهی اگر جدهی به خودش داری محمد میشونه انجدهی یعنی جد عبیب عمر عمر بن حلیه نمیشونه لذا با که اون جدهی رو به عبید کننه علا خلاف رو خواهد اون عدبی هم درست دید خب شواهد تاریخی ما این رو اختیضا میکنه پس زمیر جدهی برمیگرد جد عبید و مراد از او عمر ابن علیه ابن عبید طالب روشنه شده یعنی عیسی از پدرش عبدالله از جد پدرش عمر ابن علیه ابن عبید طالب از فدرشون علی ابن روی طالب هم رسول بزار سرم بردون شکلی که تنتشار بزرگان هم توش گیر کرده شد که این سرشگیر با تحصیل باشه این سرم رو اینجوری معناه بکنیم بعضی از احادیسی که تو این صحابه به ما آمده مثلا تو سریعه دو بزا. از این تریعه هم انا عمر ابن علی انا علی ابن علی طالب آمده توی کتاب ما مثلا توی کتاب مثلا روی من رو کتاب مثلا امام صادق صلی اللہ علیه کتاب رو سکونی انه حسین بن علیه انه حسین به حسین توی این سنده های علمی عمری این سنده عبدالله برمی گرده به عمر بن علی بن عبی ظالم ان علی بن عبی ظالم ان رسول الله این سنده رو قیل دقیق بکنیم این ها باید درست به اصلاح تقریب میشه پس در حقیقت اینجا اینطور شد کل این اصالی دیگه براتون رو شد تاریخش مستقیون شده شده این رباست الله محمن خودتا یه از دو را به ما رسیده کب دقیق کردیم یک توسط ایسر نه عبدالله در این مسخه این طبعه معاصر مرساده دو توسط حضر وزاد اون نسانی ده ده پس حضر وزاد پس وقت صدور قال امیر المؤمنی. این دیمند شاید دو شون دو هم پیش پس از دو باشه چون هر هم ان فی از است اگر به مقوم کلی نداره پس یک سند که مرسل است که ظاهرا از یکی از اینا بعد یه حادثه امام ابی لعطا ما در اخبار درست که علی بن ابراهیم اون که سراست پدرشان خوب و سرنمیادینه نظری توضیح مسئله علی داوود یعقوبی را درست نمیشه انه ایسابن عبدالله خود این ایسا هم توصیقی نشده نه که حالا مثلا اما تو کامل زیاد هست برای این آقا هست اما توصیقی نشده پس یک کتاب ایسابن عبدالله که در قرن دوم بوده توسط جد بالاش جد علاش عمره ابن علیه ابن نبی طالب این علیه ابن نبی حالا چون اون زمان برس نبوده این طریق, این طریق ایسا من در کتاب احرستانات هم من دیده همم کتاب اسمان شرف اصحاب حدیث ایشون از همین سند نعمدنه ایسر و عبدالله تو کتاب احرستانات هم همین حدیث اللهم رحبا رقایی آمده و از طریق ایسر و عبدالله در ایون سه تا سند او رضعن رضا اصلا گفتن این سند رضعیب ما یا ایل بردو برده نه اینطور نیست اینا سه تا نسخه از کتاب سیده داره سه تا نسخ نوسانیکه که این دو صحیفه و هم تفاوت دارن یه حدیث تو این هست اون نیست تو یا بجاست من مثلا اون ورداشیم مقدار مشترک رو در نظر که در اصل نسخه بوده الله اکبر خدا کنه در اون این مال اون اخبار رضات در تایپو داره که هم اون اخبار رضات فهم نمیکنه عمل لالی همشون الان نمیدرس که بگم از کجا ناراحت شده ایشون خیلی ضعف داره نمیشه الان تشخیص بدیم عملی صدوقه از نظر دکتریا از نسخه ای صد نارضا پس روشن شده من علبونم بتونه که صندت رو تک تک نکنید از بالا نگاه بگه هم از بالا رو روشن شد از قرن دوم نیمه های قرن دوم در کتاب بریسد عبدالله و عمری آمده عواسع قرن دوم از هزار رضا به نظر سحاره رضا بیشتر سانش سال سند به زرده به نظرم هم. فردو همچی تو زه هم نمیتون میاد حالا یکی پیشون ازم 125 نمشته 143 145 مدینه, مدینه. علاقی آنه پس روشن شد که این حدیث مبارن اولا محنوش است که جنوها باید کلیلی که کلنه نیوشد از خواهد و رضا رو کلنه نیوشد چیزا رو راحت علاقی آنه سکونی اما از خیبه دو رضا اصلا شده پس بر میگی از دو چیز که من اصطلاحاً اسمش باشم مصانی ده احلبه یکی مصند ایسان ده ده ده آماری یکی هم سریفه ده بزاها مصند رضا علیه سان هم گیر برند همین هرزا هم کنشون از این هر اما ایسا توصیه مداره مداره که ده مگر به همون آوازاده هست امام زاده هست نبی همین و مومین توصیه خاصی بو انوار النذر مگه به کامل زیارت چون این سنت تو کامل زیارت هم هست همین سند بین موسی بن عبدالله عبیان تو کامله زیارت هست که جوری بخواد روایت کامل باشه پس این راجع به حدیث الله معن کلهایی که زیارت صحبت میشوزه در تاریخ این یه دلیلی مهم برای تاریخینه اسامی ده حدیث کلا غریبه هیچ کدوم جوش ساده باب نداره پس این نسخه ای که مال صاحب است محمد بن حسن تدعیف شده و استثنان شده محمد ندی کوفی هم هست که اشار کذابین گفته شده خرابی های این سند زیاده بعدش تو جعال هست یعنی توش متعامی به که از نگال و بعدش هم که زیفه. و او سنده ارز کردم کل این مجموعه گیر داره کل مجموعه یکی قدر مصند این سنده عبدالله گیر داره یکی مسانیدی که منصوب از به امام رضا علیه سلام خوندن <تصفيق> یه د. هر وقت در کتاب بیشتر فعلاً الله معلم خلاصایی بیشتر ویلایش فقیه در اوله و یوبله بونه حدیثی و سنت یه فقیه و علیهون هندس. اما اینطور نیست نه. در کوتاه اهل سنت هم این حدیث آمده. هم از ببینید بعد از اینکه اهل حدیث یک رسم در اهل سنت زیاد میشن خودشان در مورد سیره به اهل حدیث کنن هشویه یا هشویه شون زبطی این کلمه مختلفه هشویه یا هشویه بینام گفتن اونت این ها ظاهر بین اندام مستن نیمی ندارم اهل حدیثم سعی کردن برای خود این کلامات نرم در مقابل هر اینکه اونا بینا هم ببین لذا این کتاب دارن این شرف اصلا کتاب دارن کتاب شاب دارن شرف اصلا کتاب دارن در ادنه از کتب حدیث و جرای در زمان سابق اصلا پس‌های اولی در شرف اینه در شرف این حدیث یکی از روایات میگن شرف از هاو حدیث نیوردن اینه البته به استثنای مربون نراهای خدا رحمتشون کنه که اول بار بودیم معنای بفهمید به ذهن هیچ احدی تا اون زمان در از بلاغ شما خلیفه باشه در اون که محدثین خلیفه رسول الله این جانشون اصلا حدیث رسول الله او خلیفه این اینا در واقع چون در مقابل اهل اهل رایه، اهل رایه خودشون رو فکر می‌کنه، قیاس، خیاس قیاس رو غلط جایی. می‌گفتن شما خودتون مندروردی می‌گین، شریعت رو به قیاس می‌گین، به رأی ماها ما خلیفه رسول الله هستیم، چون سنت رسول الله رو میکنیم. چطور یک نفری که میره جانشین برای خودش می‌ذاره، ما جانشین روشن شد. اینو میآوردن با عنوان شرط اصحاب حدیث. سه تا حالات اون وقت کسی شما که این حدیث ناظر میگه کسی که حدیث یاد بگیره این ولی اعلم مستوی میشه خیلی این که چه اینکه احتمال جزای خطر نمیگه اصلا اول این بارو معلوم نراوی تو عوارض نگار میفرم رضا عوارض 52 نراوی اسم اگه حافظی هم فراهم نشده باشه 51 52 نراوی ایشون بده 20 تا حدیث میاره در ولادت فقی اول اداره اینه ان اللهم را قلابای بهنی آسانین اجازه نراوی خودشان باعث به داره بدن نیست اجمانه با هم و تضعیف میکنه میدونه که این سنده ضعیفه حالا به پشت سنر مورد بزر روایت الان این روایت برای بدهاز سنریه از گیر داره اجمالا اصل مطلبش خوبه اصل مطلبش در مقابل اهل قیاس و اهل رعی و این حرفا خوبه اما اثباتش شلام مخمی رسول الله ترمونه هر کسی حدیث رو ندر بکنه این خلیفه این انصافاً گیر داره در کتب اهل سلطن هم چون مساده در در دیسته و چار شده ها. نهی هم نهی کلا که آفین مساده آمده نمی حدیث از خیلی از ایساب عبدالله هم آمده شاید نسخه یه صحیفت و رضای هم باشه اما مصبر قدینترش ایساب نه عبدالله هم. لیکن اونجا هم سنده نداره این هم واجه به حدیث اللهم قایی، ها به درد اینجا خوردن، درد ولادت فرید چون اونا به درد ولادت فرید. علایو از این حدیث مبارک معلوم اگر قبولش بکنیم معلوم میشه کسانی که حدیث رسول الله را نقل کردن برای مردم این به منزله به اصطلاح خلیفه رسول دارند. و در هر جایی نیست که شما نقل اینها آثار رسول نه اما دیگه حالا مثلا هر کسی هر در خویاشه از بیگ و هر عزیز زعیدی رو از بیگ این دیگه صاحب و چی شرایطی داره ثابتی حدیث شمالی چهل و شیش برهوم سیده و ترده در مجموع رائب از امیر المؤمنی از دلکمر خلق و آمن از من هم حدیث الله و اممتی یعنی اصحابی این ظاهرم حدیث اللهم رو کالا پایی بوده و قرقاتیش گردن برها این عرضش علمی نداره که خیلی رو جبون بحثیم خیلی منسج اصکرم حدیث شمالی چهل و هفت حدیث معروفیست منصوب از امام صادق اکتوب و بسر علم که فنناس فی, فی اخوانه فی و مته فاورس فا کتوبه که بنی نهو یکی علان ناز زمان و هرج لا یعنسون فی لا به کتوبه هم این در رسول کافی آمده این که اصحابنا از برگی، ان بعض اصحابی ان علی سعید که نمیشنستی و عمل مفضل آمد علایه سندش نقیمیست توش مشکلات داره واسه مضمونش قشنگیه برحال اکتور و بست علمه فرناس فی اخوانه فرنه بو سید که ارناس زمان هرش لا یعنسون فی به خطبه اصل مطلب درسته اصولا عامل بقا تمدن ها و فرهنگ ها در بشر کتابته این اگه کتابت نبود خیلی معزده چند مثلا یک میلیونم علم فرید رو نداشته از عرستو بگیم عرستو سار، سار تا از زمان ارسطو ببینیم قبل از ارسطو می کتابات ما 5000 سال چهارصد سال تا حالا عامل اساسی فرهنگ و تمدن و حیات علمی در جامعه بشری به طور کلی کتابه به طور کلی حالا اختصاص شما از فلسفه بگیرید در چیزی که بگیرید شیمی بگیرید هر هر علمی چه اصلش چه پیشرفته چه خصوصیاتش به کتاباته و لو بزرگ این بالاست فنا میشه همین همینن تمام میشه میره بیکار واقعا اگر ببینیم اگر که تا نبود یک میلیار دون معلومات فکر رو مرشید این مطلب لایه انسون قیه علا به خوتو این مطلب صحیحه جای بحثش هم نیست مرحوم سیفتاستم نبتره اونم سندش مرسل قابل قابل اعتمال نیست سند نداره اما مطلبش موبرد و نداره حالا مثلا اصول فیر اصلاً مرتب درسته اما به حدیث اشاره